میگم اگر این اطلاعات داده در زمان جنگ ما داشتیم شاید کشته های ما هفته ها در کمتر میشه اولین گام برای اینکه بتوانی توی یه حرکت بزرگ سالم شرکت کنیم این است که توان پیادروی باید داشته میشه توان پیادروی توان میاره قوت مفاصل میده قوت قلب میده چون شتاب گردش خون در مغز هم افزایش پیدا میکنه پس بر برای نشات مغزی میده پس میده. پیودروی قوت تن و روان میدند هم تن رو قوی میکنه هم قلب رو قوی میکنه هم مغز رو قوی میکنه تو راه که رفتی عرق میکنه این عرق بدبو ممکنه همراهیان شما رو تو اونجا برنتین اگه بخواید عرق بدبو نشه بدنتون رو با سرکی بشویید تنتون رو هم شستی بدن ساگون زدی و پاک کردید با سرکه لیف واغشته میکنید 5 دقیقه بهونه دیگه بدن بود. بعد تو پیودروی مورچ پاسست میشه درد میگیره برای این پاتون رو بدارید توی آب و نمک آب و نمک استگان بخش مفاصله. ترکیبی که با در اینجا پیشنهاد میکنیم ترکیبه آب لیمو، نمک و هناس آب شور کرده باشی یه لیمو توش تا باشه حنا بشه باشه. این هننا اگه تو ساق بگیری حتی این پادرداهایی که پیرمرد و پیر دارن هم درمان میکنه در این حال مقاوم کنندم هست. وقتی که رفتی روزهای اولی پیادردی یک عرق شدید ایجاد میشه بعد خسته میشه یه دفعه این عرق خوش میشه سرماخوردگی خوردگی بدید میاد عرق که میکنی هر کجای بدنت که عرق کرده خوش ای عبی نداره ولی شانه ها تون رو بپرشونید شانه که چایید همه بدن میشون یه چیزی رو شانه تون شانه نواد به چاند به هر حال جمعیت جمعیت بزرگه، یه بزرگ, بزرگ با فرهنگ مختلف با غذاهای مختلف غذای فوری میارن اونجا یا غذا پخته باشه نپخته باشه شسته باشه نشسته باشه ممکنه ازت گوارش مشکل پیش بیاد عفونت پیش بیاد اول اگر بخواید از این عفونت ها آسیب نبینید خیلی زندگی استریل نداشته باشه این که فکر نکنم اونایی که همه توی لیوان یه بار مصرف میخورن مریض نمیشن اینا مریض استعداد استعداد بیشتر است. بگید یه طبیبی گفت لیوانه بار مصرف خوردن بیماری آفرین هست من من امضا می‌کنم پای. نخراقطو. لیوانه یه ده بار مصرف یعنی همین لیوانی که میشورید و آب می‌خورید اون سالم تر است تا اینکه لیوانه مصرف بخوری برید دور چون می، میکروب ضعیف شده قابل خوراک بدن رو در مقابل اون تقویت می‌کند. زندگیتون رو نیمه استریل کنید که خیلی اسید ننید و درش را درافتید. یک کار علمی هم انگلیس ها انجام دادن به خاطر این رو ثابت کنن بعدا یک جمعیت 2000 نفری رو از مکان استریل انگلیس بردن به یک مکان آلوده شش ماه زندگی کرده برگشته اینا اندازگیری کردن کل فاکتورهای ایمنیشون تغییر کرده ایمنیشون رفته بالا کجا بردن؟ از انگلیس بردن هند هند رو نمیدونید چقدر کسیفه توی ایمیلیشون عملا ما دیدیم این یک بچه مثلا بی بختیاری وقتی که از محل زیسش میاد اینجا از چادر میاد بیرون دستشونه برگلید 500 تا مگس بدرخش میکنه همینطور لخت دریا میاد این هیچ وقت مریض نمیشه آلوده نمیشه ولی بچه ما تو تهران از اتاق خواب بره تو حالا حالو برمیگرده سینه‌بلو میکنه فوری یه نفر بیا سرمخورده باشه یه صفه بکنه آلوده میشازن این به خاطری ای که با اون آلودگی ها درگیر نیست اما حالا میخواهید برید اونجا ببینید چند چیز با همراه باشه یک نعنا دو نمک سه او برگ بررگ چهار شوید همینطوری آرام آرام جویدن شوید مشکلات و گارش متفر می کنه جویدن همینطور عفونات متفر میکنه نه همون برگای های که تو مسیر از مهران به مختلف هست همین برگار یه مشور بچید توی همون گمرک مهران توی جیبتون داشته باشید هر روزی یه دونه برگش و هر چهارصداعت یه برگش آرام آرام بجوید همین استلیکان دست دلو گریم می اگه سرمان خود باشید شما درمان می کن مسئولیت خوراکی یا اتون باشد مسئولیت استنشاقی مسئولیت گذشی مسئولیت شیمیایی یه بمب شیمیایی گفته مسئولیت غذایی با هجامت عام قابل از بین بردن کامل است پس یکی از خانومی که مدیران و مامورین اوزیان سرای کربلا باید بلد باشن هم با تعمیرشون بشه باشه ده. مسئولیت از هر طریق باشه اول انجام آخرین کاری که انجام شده است برای درمان مسمومیت که این گزارش اولشو اولیه که فلان میگفتن همون شب به امریکا بردند. این درمان مسمومیت با قرص برنج است وسیله حجامت. این آقای دکتر فلاح ما در بابل انجام داد خب قرص برنج هر کس بخوره محکوم به مرگه آن یا چهارصد بعد میبینی یا هشت این تا چهار پای نفر اینجوری زنده کرده است در شما اجازه ندید شما که پیاده نرفتید یه دفعه خستگی مستولی بشه راه دو روزه رو سه روز برید استراحت هم اینجوری که به پشت خوابیده بشه وست تا حدی که ضربان قلب تنزید شد ب عطل مداوم و اسفند مداوم پایگاه ها همینطور اسفند دود کردن قسمت های مختلف دود اسفند همینطور که میزنه استریل میکنه رو کا دود اسفند دود کنند که اگر یه آلودگی های اینجوری هم بود این اسفند میتونه هم گرمی انرژی بده هم افونت احتمالی رو طور کلی مرتفع بکنه آزمایش کردم کشت گرفتن از دیوارها با دود اسفند با سرپنده های مادر و سرپندهای شیمیایی اسمم رو عمل کنند حالا ممکنه زختی اتفاق بیفته حالا به هر دلیلی پاتاول بزنه یا یه زخم اتفاق بیفته یه چیزی منفجر بشه یا یه چیزی بخوره زخم بشه هر چی زخم تازه درمانش اصل است الان تو خونه تون اینجوری عمل کنید که تجربه داشته باشید به اعتماد برسید که اگه اتفاق افتاد عمل کنید وقتی ادم اطمینان قلبی نداره ممکنه دستش میلرزه کنه حالا به زخم ساده زخم که مثلا باست پنجره گیری میکنی مثلا دست در رفته تو فسافت همین رو درمان کن پس اصل برای زخم های فوری نمک برای زخم های عمیق افونی زخم عمیق عفونی شد همینطور نمک رو فروج تو یه مقدار می سوزد چیز در بود 5 تا 7 دقیقه ولی عفونت از عمق میکشه کشه بیرون و اگر گرفتنتون بردا ضربه زدن چیز سیلی زدن شملاق زدن چیز زدن تا ملز زد. روغن زیتون روش روغن زیتون میتونه با سرعت جای ضربه رو دو روزه ترمیم میکنه این نقطه عمومی تقریبا تا 20 تا 20 و چند دوسته برای استرالهای این شکلی السلام علیکم و